آرش به من گفت که این نوارا داره تموم میشه داره تمام این داستان سیاه اینجا ضبط شده یه تیکش مونده همین تیکشی که مونده و تو بیا رویست شنبه بیا که این داستان رو تموم کنه. این نوارا همه بشه یه کلاس یه ترم و یه داستان از اولت آخرش که نیم که قولی به ایشون دادیم حالا اگر سه شنبه همه من دارم بیام لوسانجلس بعد از اونجا هواپیما بگیرم بیام اینجا حرفی هم ندارم بیام اما شرطش اینه که دوستان بیام دیگه اگر بیام سه شنبه ما می آین, این داستان هم تمام میکنیم به بار شما هم چیزی افزوده نمیشه بلکه کم میشه برای اینکه الان نخونده جزء جز تکلیفتون هست خب خونده باشیم بتری دیگه بنابراین ایست شنبه میایین منم بیان اگه نمی که قمتون کنم حالا چرا میکنیم؟ میای میایم می می میایم بله؟ خیلی تا کجا خونده بودیم؟ 2740 بیشتر استییشییش خونده بود ها अरे 211 2740 مالی تا سر پس سر بود خوندیو یکی از جوانان وطن بخونه ببینند، تو میخونی؟ با به برنز از سیاهوش بدان کار دست ببینندر آمد به تخت نشن زره را به همبر ببستند پنج که از یک ذرخ فنگ رسیدی برنج نهادن بطفت آوردگاه نداره بر او بر به هر سوزه‌ها سیاهوش یکی نیزه‌ی شاخوار کجا از کدر داشتی یادگاه در جنگ مازندران داشتید به زنجیر برد نیزه برپی که به آورد یک رفت نیزه به من را به چون پیر من بزد نیزه و برگرفتان زره ذهر را نماند کی. نماند, نماند بند گرفت از آورد نیزه برآورد راست را, را بیندار نانسید خواست سواران گذفتی و جنگ ساز برفتن با نیزه های دراز فراغان بگشتن، گرد زرک میدان نبر شد زره گرد سیاهوش، سفر خواست، گیلی، چهار دو چوبین گیلی، دا... گیلی، مال دو تو از آهن آفداز کمان خواست، با تیرهای خودن... خدان. در میان زد، سه چوبه، سه, سه چوبه، سه, سه چوبه بشن. یکی در کمان ران، دو نظاره به گرد اشتفاقی <تصفح> <تصفح> بدان چهارچوبین چوبین و زاهن گذر کرد پیکان آن نام و بزد هم بران گونه ده چوب بر او آفرین خان برناب و پیر از آن دخت یکی در گزاره نمان همین هر کسی نام یزدان بخان بدو گفت گرسی و از ای به ایران و توران کرا نیست یا تا من اصوب آورد به هر دو به پیش سپاه بگیریم هر دو دوال کمر به کردار جنگیز و پرخاش هست به ترکان مرا نیز همسا کسی چو اصم نبینی اصفان بسیر نبی بس. چو اصم نبینیز به میدان ما نیز همهای تو هماورد تو گرد بالای تو گریدونک گریدون که گلی دون که بردارم از پشت زین. تو را ناگهان برزنم برزمین بر زمین. چنان دان که از تو دلاغرترم به از تو به مرزی ز تو برترم وگر تو مرا را بر زمین، نگردم به جایی که جوگرد کیم سیاوش به دو گفت که خود مگوی که تو مهتری میز پرخاش جوی همان اسب تو شاه اصب منم کلاه تو آذرگوش. آزرگشت به من. من. جز از تو توز ترکان کسی برگذیم که با من بگردد نه بر رایتین بدو گفت گرسی وزهی نام روی که ما چون به روی اندر آریم که ما چون به در اندر آریم روی زمانی به واضی نه بر نه بر آوریم بر بر نه بردینه بر بر برد بر روی زرد آوریم روی زرد آوریم باش دارویم بدو گفت این رای می به میدان ام به نزده این من از جای می نه برد دوتن جنگ مردان باقد پراد خشم یکر چ برادر توی این همین همین زیر نعلا بر این ماه را کنم گویی به فرمان تو بر این بشگرم احضا پیمان تو زیاران یکی شیر جنگی بخوان بر این تیز تکباره بی برنشان گریدون گری که رایت نبرده من است سر سرکشان زیر گرده من است بکوشم که ننگی نگین. ننگی؟ ننگی؟ یعنی ننگین ننگی. ننگی که ننگی به کار به نزدیک آن نام و شفیاد بسیار ارز که بسیار آره آره گختارم در رسیدن از نزدیک سیاور ارزشون نخوندیم حالا میخونیم حالا نداره. حالا میخونم اینا رو بگیدیم ارز کنم که قبل از او بیت هزار دوازده رو بیاریم همه آوردیم بیت دوفا میشه تو تون زدی زدیباق و اسبان به زین پلنگ به ذرین ستام و جنای خدنگ یعنی چی؟ حالا من یادم رفت بگم شما چرا نپرسیدین؟ زین فلنگه نیچی؟ این از خود فلنگ ایلو خوب جنای خدنگه نیچی؟ ستنامه شب که ولی این چیشیه، این کلمه مرگ یه دوشاخه داره میگنم، جنافه جنافه این اصل کلمه ج... جناب عوام میگن جناقه نسکی بنده اسمم محجوبه یکی از لاتا بود دوستمون رفیق من خسرو بود من میگوه آقای محجوب آقای ماجو ولی اینم جناق که میگن مردم هم جناب بس که بیفته میشه جنا جنای خدانگ بله اون چوبی که زیر زیر میذارن به صورت دو شاخه هست این جناق سینه و جنا هم هست که بشون انداخته جنای خدنگ یعنی جونابی که یا جناقی که زیر زین میذارن از خدنگم میذارن این اولا که حالا این چیزی نداشت فقط مسئله هنر نمودن سیاوهش میگه که اول خواستا میگه که ببینیم و چیز بکنیم و بیاییم و مهنردم بکنیم و کاری بکنیم و خب هر کسی هم میخواد هنرش نشون بده سیاوهش میگه پنج تا زره رو بلندم به هم زره سنگینه زره را به هم بر ببستن پنج که از یک زره تا رسیدی به رنج یعنی یکیشو پهلوان زورزورکی میتونست بکشه، ناراحت بکیم میپوشی. پنج ذره رو بستن به هم سیاهاش که نیزه شاهوار کجا از پدر داشتی یادگار کجا من یکه. که در جنگ مازندران داشتی در جنگ مازندران دستش بود حالا این پدر ممکنه مرادش کابوس باشه که پدرش حقیقتن ممکنه هم هست پدر خوندهش باشه یعنی رستم که همه تربیتش رو به داشته و بعد مثلا نیزهش هم داده بینیم یکی از این هستن میگه و در جنگ مازندران کابوس هنری نکرد جز اینکه گرفتن کورش کردن اونجا روی چیز و رستم رفت برای افغانو بیاره شده اینه که اعتمال این است که نیزه رستم میگه نیزهی که در جنگ مازندران داشت و به زنجیر بر نیزه بگذاشتی این نیزهی بود که از زنجیر گذاشتن یعنی گذروندن یعنی این نیزه از زنجیر گذر میکرد رد بشه به گذاشتن الف تعدیه صحبت کردیم یه وقت ممکنه سوالتونم بیاد، گذشتن یعنی را رفتن گذاشتن گذاشتن یعنی گذراندر که در جنگ مازندران داشتی به زنجیر و نیزه بگذاشتی میگه این نیزه رو گرفته رفت زد توی این پنجت زره هر 5 زره رد شد نیزه ازش. بعد با دست اونجوری بلندش پنجت زره بلند کرد هر جا خواست پرد کرد بایدش که با همون نیزه پر شد با آورگه رفت نیزه به دست، اینان را بپیچید چون کیل ماست بزد نیزه و برگرفتان زره، زره را نموند هیچ بند و گره یعنی رد شد چون زره های خوب بافتش خیلی ریزه ریز بافت و فولاده نواد چمشی روش اثر کنید با این حال رفت و گرفت و بعد از آورد یعنی از میدون جنگ نیزه بر راست ذره رابی انداغ زان که خواست بعد میگه سواران دیگه سواران گسی و جنگ ساز برفتن با نیزه های دراز فراوان بگشتند گرد ذره زمین میدان نبر شد ذره یک گره میگه گناتون سنمزه یک گره اینا از ذره را رو روی زمین بلند کنن هیچ قضومشون برشد یعنی بلند شد از زمین بلند نشد فراوان بگشت بعد تیرندشی میگه میگه چهار تا سپر گیلی سا خاص گیلان سپرهای خوب می ساختن ساهرن و دیلمان یعنی مردم کوهپای گیلان دیلمان کوهبایه گیلانه و مردم خیلی گردن که لفت درجه کی داره به خلاف خود رشدی و مردم جلگه که معروفن به اینکه که چیزن نه. تمبلم هستن مردم تمبلم هستن ولی مردم کوهستانشون به خلاف بسیار بسیار جنگی هستن از شغلایی که داشتن سپاهیگری بود. یعنی می اومدن با سپاهیان دیلمی داشتن، درنکه نا جنگی بودن. و چیز زرنشونو هم خیلی رفت. میگه چهار تا سفر خواست. دو تاش چوبی، دو تاش آهنی. اینا رو گذاشت. کمان خواست با تیرهای خرد. شش هم درمیان زد، سه چوبه به چند رفتون شش هست زد به کمرش، سه چند تو دست لابود یک شم ده به تیرشون می یک شم لابود با کمان بوده چجور؟ خدنگ یعنی سی تیر خدنگ؟ نبودی تو؟ دیگار. وای بر روزگاره ته <تصفح> وای بر روزگاره ته اسم است که چوبش هم محکمه هم سبب گفتم، یا حضرتی بله. بله. کمان خواست با تیرهای خدنگ شش در میان زد بعد به کمارش ایست چند گرفت دستش یکی در کمان رند و این یکی دست بگید بفشاد رند نظاره دست پای گران، بدان چو و چار چوبین و زاهن اون چارتایی که از چوب و آهن بودن یعنی دوتاش چوب بود و دوتاش آهن بدان چارتوب اینو زاهن سفر گذر کرد پیکان آن نوم برد تیکان نکه تیره میگه نکه تیرش از هر چارت سفر رفت بزد هم بران یکی هم نزد ده تیر پشت در هم انداخت همه به هدف خورد همه هم رد شد از آن ده یکی در گذاره نموند یکی در راهش نموند یعنی رفت اونجوری که میخواست همین هر کسی نام یزدان بخواد نام یزدان بخواد یعنی ما شاء ماشالله ما شالله ما فارسیش میشه به عزت که اینجوری می نویسن اینجوری می نمیسن. اما معمولاً اینجوری نمی و اون وقت دوستانی که سوادتون مثل سواده بنده در خوندنش گرفتاری پیدا میکنه حافظ <تصفيق> میگه سر زلفت بنامیزد کنون مجموعه دلهاست بنامیزد یعنی ما سر زلفت بنامیزد همجرانه بایی میسین اینجا بنامیزد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> سر زلفت بنامیزد کنون مجموعه دلهاست از آن باد ایمنی بادش که انگیزت پریشانی خیال چنبر زلفش فریبت می دهد نگر تا حلقه اقبال ناممکن نجمفان خب ارز کنم که یا می گفتن که اون وقت عربی بلد نبودن می گفتن به نامی همین هر کسی نامی از آن بعد گرسیوز گفت که تو در ایران و توران همتانه داریم بیا با من کشتیم و با هم بریم و دوال کمره هم دیگری بگیریم و. کار زشنی هم میکرده معلومه که حسوده و میخواد یه جوری اینو کنفتش کنه ناراحت از این چون توکانگیش رو نتمسن بکنن و هیچ فکر نمی که ممکنه خودش هم مچالف کنه بینید کنار ولی سیاوش احترامش رو حفظ میکنه اینکه که امکان نداره. اسف اصل تو اصلا شاه اسف من چیروزی داریم اینجا چیرازیش نداریم شیرازی ها میگن که خیلی تاریخی است و راستم هم خیلی تاریخی ما مثلا این ساخونه من شیرازیه آقای آذری بعد چیز خریدم مثلا راستا قوطی حلوا خریدم یک کمر اون خریدم حالا منم یه نفرم زنم هم نیست می‌گه ما همینه برد خونه؟ جا خود تو می‌خوریم <تصفيق> چی می‌خورم؟ مرد حسابی خیری نمیست خودم نمیشه هیچ حالش نمی‌شه آخر سر می‌ذاره می‌ره تا بعد ببرم بزارم پایین کنم آمون درده برو بعد مثلا شما میرین خونه دشیرز بعد قضا می‌اره وسطون اینا، این که بفرمین رو قابل نداره و قربون قدم شما نون فنی رو و رو قابل شما نداره مثلا فر خوراک که باشم یا خوشمزه است که خوب تعریف میکنیم که به بح بچه خوراک چرا خوب یا خوب نیست بازم هم بر اساس ادب که میگن که زنان شیرازی عشبه و اینا زیاد دارن اما آشپزیشون خوب نیست آشپزی مال ترویزی هست زن ترویزی گفتم که مردک میگفت چهارت زن بگیر آدم نه نگفتم <تصفيق> بله گفتش که آدم چارت چهارت زن بگیر یه زن تهرونی یه زن شیرازی یه زن تبریزی و یه زن جوشغونی جوشغون اسمی یه دهگوره ایست نزید که عرادی مردمشو عبلهی معروف گفت که گفتن چطور گفتن خانم تهرونی برای پذیرایی ها و برای بیرون رفتن و برای پارتی ها و مراسم رسمی و اینا خانم شیراز خانم شیرازی هم عشقگر و لوند و برای لوندی و دلبری و ملاحظه بسیار خانم تبریزی هم که خب تبخ تبریزی معروفه خانم تبریزی هم برای اینکه که غذاهای خوب به پس صفت رو گفتن خب جرشگونی چی؟ گفت جرشگونی هم برای که هر وقت دستانی تا عصبانی شد اونو بزنیم باید هر در که بعد شیرازیه شیرازیه هم خیلی آشفازیشون تعریفی نداشون حسی کنم که حالا مهمون که میاد خب ادب می و بعد میگه که دست شما دردن کنه خیلی ممنونم این مرگتون مثلا خیلی خوشمزه بود اینا باید خانومه میگه واح واح واح خاک پر سرش کنن خانم این کنیز مرگای خونه شما هم نمیشه مرگ شما حالا سیابهش میگه که اسب تو اصلا شاه اسب منه بکرسی و هست همون تو شاه اسب من است با. میگه که بیا و با هم دووال کمره هم جربی کنیم اگر من تو رو زمین زدم که معلومه مستواناترم اگرم تو منو زمین بزنی چی سیاوش میگه نه امکان نداره ولی ان شاء الله هست ما شاء الله هست میشه ان یعنی اگر خدا این شاء الله که بهترم هست حتما ثواب می‌گیریم این یعنی اگر شاء یعنی بخواهد. الله هم نمی کن. سره که به نمیسین انشا. انشا نیست دیگه. دو کلمه است. باید نمی که این چیه. ولی سواه که به کاملا معلوم نیست. اگر خدا بخواد. ما شاالله هم یعنی چیزی که خدا خواسته. واسه همی شاهش شاهست. ما یعنی چیزی یعنی این خواست خدا از خودتو اینقدر خوبی مثلا خب میگه که نه من با تو که چیز نده اگر میخواد من ببینی یکیسی غیر از خود تا از ترکان انتخاب کنه که رو میگی تازه با هم جنگ دوستانه بکنی نه جنگ جدی ما میگه که سیاوش میگه که گرتیوژ بهش میگه نه ما جنگ جدی نمی کنیم نه میگه نه نه این درست نیست تو میدون با من تو کاری نداری جایی در برابر من در میدون نداری برای اینکه نبرد دو تن جنگ مردان به با, با اینکه ظاهرش هم روی خصمی و دشمنی نیست ولی به هر حال آدم به حریفش باید کنه طبیعه دیگه اصلا میرن جنگ کردن تو اینو زورش بیشتره و خب این همه زورشو میزنه دیگه بعدم ناراحت میشه اینکه میدارن دارن ها بعد بیان روی هم به دست بدن برای اینکه اون که شکست خورده ناراحت دیگه بدیهیه این اینکه حرف نداره و ببینید تتروسی متوجه این مطالبه و اینه میگه میگه سیاغهش از زبان سیاغهش نبرد دو تن جنگ مردان بود پر از خش اگر چهرخ با اینکه چهره چهرخندانه ولی بلاخره چیزن دیگه زگیتی برادر توی شاه را همین زیر نهلاوری ماه را کنم هرچگوی به فرمان تو برین غیر از این یکی برین بشکنم عهد و فیمان تو در این مورد هر گوش نمیسنم زیاران یکی شیر جنگی بخوان یکی از روستانو بخوان از یاران خود تو میخواید و آسست خویتم بشون با او من زورآزمایی میکنم و کوشش میکنم که ننگی نگردم به کار یعنی ننگین نشم سر پرازش. این باز قدم دیگری است که سیاوش به طرف مرگ متأسفانه وارد میشه از دو تا از پهلوانان خورش بود که جنسشون مثل خود گارسیر از بد بود به نام گرومیزره و دمور انتخاب میکنه سیاقاش میگه میخواید دوتا بفرس انتخاب میکنه میگه برای ما سیاقاش شمد این مثل یه بچه 7 ساله، 5 ساله اینا رو یکی میگرد زیری، این بغلش یکی میگرد زیری ما رو میزنیم این و اینا سخت که نفتی شد با کین رو در دلید. و گروزرهه که سر سیاقاش رو البته تو اونش هم پستید چون روستن وقتی نیاز بسن. و هر حال باز این یه قدم دیگه است و در نتیجه جنس بد گرسیوزه هست. که به یه نهوی یه بابایی بود اینجا مرده حالا خداش بیا مرده این خیلی دوست داشت که دست بالا داشته بشه و مثلا با جوون جوان رو پرس کن که گفتش که بگه یه پینپون بازی کنیم مثلا این جوان اون پینپون شکسته باید این نمیتونسی بقا اون، مثلا بیشتر بلد نیم باید با بیا کشتی چرا کشتی بگی باید؟ این هم همینطور، این پیشنهادایی که داره میکنه این پیشنهادایی که داره میکنه، اینا از ناراحتیه که این داره بیا با هم کشتی، چه بکن؟ به یه جوری، میخواد که این، جر... حالا اولش هم خودش گفته که بیا چیز که باز برای این بوده که جوری این خیتش کنه باید نشده خود ارز کنم که بکو بکوشم تا اینجا خوندیم بکوشم که ننگی نگردم به کار به نزدیک ها نامور شهری ها ولی میگه که بعد حالا اه... میخونیم انداره میگه بعد گفت که کی دابت ها جنگ با سیاوش گروی زره؟ گفت من وقت سیاوش میبینه تو میدونست که حریفش نیست میگه قربان از شما گذشته من دیگه و هیچ کسی اینجا جنگش رو روبر نمیگردم و این آقایی که میخواد بیاد بگین یکی دیگه هم هم با خودش بیرده چون وقت دم او رو بعد دو تا ایشن حالا می‌بینیم که اونو بعد می‌بینیم. اول اون فصل قبلی رو بخونیم رسیدن گرسی وزه <تصفح> میگه که همین نرسیده به شهر سیاوهش کشتی از ناراحت شده نگه تر گرسی نامدار سواران توران گزیده. خریده سفاه اندر آورد گرد بشد شادمان تا آور سیاوخش اسم شهره سیاوخش رو بشید به سرد راه حدیره شدش تازنان با سفاه تازنان یعنی تازانان یعنی در حال تاخت گرفتند مریه کسیدگر را کنار سیاوخش بپرسیدش از شفیار به ایوان کشیدند از جایگاه سیاهوش بیا جای جایز به پاست دگر روز گرسیده از آمد تگاه که خلعت بیاور به پیغام شاه سیاهوش بدان خلعت شهیار نگفت کرده شد چون گلندر بهان. نشست از بر باره گامزن بزرگان لشکر شدند ندروند همه شهر برزن به برزن بدون نمود سوی کاخ سوی کاخ سوی کا سوی کاخ فنها دور شرک تور داده خول شما ها همه این طورش داد اما جای شهرنش برزن به برزن یعنی چه محله به محله نشونش داد و بعد اومدن بعد فریگیس را دید بر تخت آتش نهاده به سرورز پیروزه تاج پر <تصفح> از چندان به زرین کلا فریگیس با تاج در پیشگاه خرود آمد از تخت کردش نسار بپرسیدش از شهر از شهر نیاد یعنی فریگیس اومد از تخت کائنا هموش بود دیگه بب. دلومه رو به گرفتیندن آمد به دوش دگرگونه تر شد به آین رو بود گفت، سالی دگر ببذارد سیا بشتی سی را به کس نشمارد همش کادشاگیز و هم کاجوگاه همش گنج و هم بوم و برد هم سپاه چون خودش ذاتش بده، بیرین، مسئله همینه کسی درون رو میدونه من اگه بخوام مقایسه کنم، فکر کنم این خانم اون آقا اون آقا اون خانم با باید من فکر میکنم دیگه هرچه من ناراحت، میشم، اونام میشم، هرچه من خوشم نیاد تو من اونان... کس دیگری که اندرونشو نمیشنستم درسته؟ این خود این آقای و از یه وضعی داشته که اگه این قدرت پیدا پیده می کرده شروع می کرده به اینکه طرف رو از میدون بده اگه اگه با افراسی ها بردرش این معامل رو نمیکرده که زورش به اون نمیرس واسه می میخوام همونجور فکر میکنه دیگه یعنی فکر کنه خودش جای سیاوشه بعد میگه خب یه سال گذره این با این وز و با این کاریزمایی که این داره و با این جاذبه که این داره و با این بعضی که مردم دوستش دارن و هم گنج داره هم سپاه داره هم برج داره هم بوم به این دیگه کسی داخل آدم میذونه در سیاوش اینطور نبود یعنی آدمی نبود که اصلا با این چیزا از راه در بره اما کرسی دل خود شو می‌دید، فکر کرد در دل سیاوش هم همونطوره ای اینا این‌ها است که او میکنه و فکر باید سیاوش اینجوری می‌شه، اینه که شروع می‌کنه و نفش بعد دهان دل پیدا نکرد، همین بود پیچان و رخصار زرد رخصار زرد رخصار زرد. بدو گفت، بس کردی از رنج فیش؟ همه مثال شادان زیاد گنجتی در ظاهر تعرف کرد بهش خوال همدالله که گنجتون دیگه سمر داد و بعد نهادن در کاخ ذره این دوته نشستن شادان دل و نیم فرد نوازنده رود با میل و سار بی آمد برای تخت گوهر نگاه زنالیدن رود و چنگ و سرود به شادی همه دل داد دل رود همی داد دل رود چو پرشید به هر جای بنوید تاج از فراز. تاج است فراز. تاج است فراز. سیاوش از ایوان به میدان بدایش. به بازی هنی گردمیدان بگرش. شوگرستی و زامات بیاد دخویی. سیاوش سوی گوی به حال. سویه. با. با. تونده که باز کرد. سویه بگی نمیشه. سیاوش سوی گوی. سویه. سویه سوی گوی. سوی گوی به حال گوی. در زمان چوگان جریم. هم آورد به بگو خاط میدان جریم. چوگان اون گوی شد ناپدید تو گفتید به تهتش برکشید خلاصه حریف رو در گوی بازی هم میگه که اون به خاک وقتی اون او او چوگان رو گرفت یعنی چوگان او. اون گوی رو انداختلو دیگه آوردش رفت به خاک بلی بفرمون تا سخت ضرگی به میدان و برجاست جوپی نهند دوباران به میدان به کردارید به کردار گرد به کردار به دو مهتر نشستند بر تهت زرف بدان تاکه را بر خروزد کند بهدو گفت گرسیوز ی شهر یار خردمند و از خشتقان یادگار هنر بر دو نیز کرده گذر ززد گرب و ترکان نمایی کند به نوکه سنان گرب و تیر و کمان زمین آورد تیرگی یکنماژی زوبین، زوبین، همشه یکیه یه اسم دیگهش خشته خشت. خشت هم خشت با یه اسم دیگه های خشت خیلو خوب خیلو خوب، چرا رفتی داره <تصفيق> <تصفيق> این هم اسمش خشت یه ما... اسم دیگهش هم شله کوتاه انقدر است که با دست پر میکن پرت میکن نمیزنه توی فیلم مسنجر اگه دیده باشین پی رو اونجا اون وحشی که میاد همز امون پ هم میکشه یکی از این نظرره پرت میکن اون اون گ یا شل یا فشت برجات هد تو گویبازی هم چیز شد کرسی بعد ناراحته اینکه خب حالا بس یه هنرنمایی بکنیم به نوک سنان گر یعنی یا اگر یعنی یاست به نوک سنان یا به تیر و کمان زمین آورد تیرگی یعنی یه خود زمین را... چیزش بکنیم ناراحتش بکنیم یعنی بتازیم بوشیم بعد شروع میکنن سنان که دیدیم میاد تا بکوشم که ننگی نگردم به کار به نزدیک آن نامور شهریار بیت ازایستاد و پونزده. تو میخوای بخونی آرش؟ نه، تو بخونست بخوندید گرسی قضی نامجوی بخوندید کرتیوز نامجوی، اینکه حالا خوش آمد، خوبدار اون تو فت... لازم میکنین که در این حال که غزل و بد جنسه از این حرف کشت اومد برای اینکه احتمال شکستشم بود دیگه اینه که که سیاوش گفت نه و کوچیکی کرد خب در ظاهر و هر حال اونو بزرگش کردیسته خب نه من ممکن نیست دست بگیست اگر میخواییم بگین از اون افرادی که بیان من امیدوارم که از سرش سرشکستگی نشید بعد به ترکان چنین گفت کس سرکشان که خواهد که گرد از تینشان یکی با سیاوش نبرد آورد سر سرکشان زیر گرد آورد زراینده بودند لب با گره به کاسخ بیامد گروهی گروی زره منم گفت شایسته, شایسته, شایسته یه کار کرد اگر نیست او را کسی هم نبرد سیاووشت گفت گروهی زره بر اون پرز چین و روخان پر گره به دو گفت کسی و دیشه یار سگردانه نشگر برا نیست یار به دو گفت کستو گذرشت نبرد گذرگان <تصحنت> مرا خار گشت از ایشان دوی البایداراسته به میدان نبرد میدان. میدان مرا خواسته برفتن پیچان دمور و گروی دمور و دمور نوشته دمور. بر. بر. برفتن پیچان دمور و گروی بدان هر دو بنهاد به بند میان گروی زره خروب چ... و چنگاه رو برزد گرفت رزین برگرفتش به میدان بگرد نیازش نیامد به بند کمان. پس به پیچید، سوی دمور، گرفتش سر و گردن او بزوید چنان خوارش از پرس زین برگرفت که گردان بماندن، زود در شگف چنان پیش و آورد، گش که گفتی یکی مور دارد بکش فرود آمد از اسفا بخش از خنده بر تخت زرین نشد برا او کرد، و از کار او، از غم شدش دل، از رنگ روی پراد رنگ. رنگ روی بزان تخت ذرین پیمان شدند به, به کردار گردان ایران شدند نشستند یک هفته با و رود میآورد رامشگران و سرود به هشتم برفتن،, برفتن گرفتن ساز بزرگان و کرسیوز ساز یکی نامه بنبشت نزدیک شاه پر از لاره و پرسش و بازن پس مرورا رابطی هدیه داد برفتند از آن شهر چون باز شای برخشان سخان یک بادگر از آن پرتونر شاه بوم و بعد چین گفت کردیم وده سین جوور که ما را بد آمد از ایران بر روز بر روی ینی به سرمون با... از ایران بعد به سر ما آمدگه آشکار میکن چ؟ با. یکی مد را شاه از ایران بخواند که از ننگ ما را که از ننگ ما را به خوی در نشان با خوی. دخل... خوی یعنی عرق به جیان چون دمور و گروی که بودن گردان پرخاش روی چونان زار و بیکار گشتند و خارز چنگال ناباک دل یک سوار سرانجام از این طب زران از سخان نه سر بینن این کار را نبان. میگه مثل خودش میگه، دیگه تک میبارن که این چیز میکنه سورش خواهد کرد یا آقی خواهد کرد. که در ما در فرده بود همون چیزی که خودش اگه بود میکرد بر چون این تا به درگاه افراسی آب نرفتن در این چون از زیک ساله آره چیران سیار؟ که این بهت یعنی که تا دم در افراسی آف رسیدن در اینجور جز آب تیره نرفت یعنی همش بدبویی از رو بزمید لب چون این تا به درگاه افراسیاب آف نرفتن در اینجور جز تیره آب چون از زیک سالار آره تیران سپاه رسیدند و پسید هر گونه شا فراوان سفان رفت و نامح بداد بخند و بخندید و رو گرشت شاد دیگرcharacter و کینه دار بدان تازه‌روخساری شهریار همین بود یک دل گرفت کینه درد بدان که شد چد لجوید همین بود یک وقت همه شب بپیچید تا روز خاص که شب جامعه را کرد چاپ سر مرد کین اندر آمد, زخاب. آمد به خواب یا وقت نزدیک آسیا در ویگانه کردن کردند جای نشستند جوختند هر جمله راز <متصفح> یه دقیقه صبر کن من یکی دو تا چیز در بگم بعد بریم سراغ اون چیز ارز کنم که از ایشان دویل فلان به بند میام میگه که بند کمر گویزیره رو گرفت و کندش رو پرتش کرد تو میدون بعد همه هفت طرف دمور چنان پیش گرسی وز آورد گشت من این گشت رو نمیدونم فرهنگم نگاه نکردم اینو خودتون تو فرهنگ ما این نگاه کنیم ببینین چی؟ که گفت یکی مور دارد کش کش یعنی زیر بقلب گفتم دست به کش کردن یع یعنی کشف اینجا هست که گفت یکی مور دارد به کشف کرسی از این کارم خیلی نراحت شد روز هشتم رفتن، دیگه اونجا چیزی نداره مطالبم که گفتم، خوی رو که گفتم عرق از جوج و سیر آبم گفتم وقتی که نامره میارن افراسی ها خیلی خوشحال میشه بازم از خوشحالی افراسی ها کرسی را از سخت شب تا صبح نمیخوابه فرداش میره پیش افراسی‌ها بشه شروع می‌کنه به مایه گرفتن خلوت می‌کنن و بعد اینا رو می‌کنه بدو گفت کرفی وجه شهر یار، تیابوش دیگر دارد آیه می‌خواد درستاده آمد به شاه، نهانی به نزدگی، نزدیک که... اون چند را ببینید دروغو؟ می‌گه چند بار پنهانی از طرف کابوز پرستاده آمده پلن. ز رو موزه چین نیزش آمد پیام همین یاد کاموس گیرد به جام بر او شد فراوند سپاه بپیچید به ناگاه تو به از او جانشان آه. اگر تو را دل نگشتی دو جام، زگیتی بری رج... زگیتی بل... زگیتی نکردی ستم تو کشور که چون آتش کیز و آب به دل یک زدیگر گرفته شتا تو خواهی کشان خیر آوری همی باد را در آوری، اگر کردم این تو این بدنهان مرا زیشنامی بودی در جمعه؟ بسیار که چی میگه؟ میگه برمیگرده اولا به ایراجو سالم و تور میگه اگه تور از اینها بدی نایده بود که نه بدی نایده بود میگه ای تور از اینها نایده بود که این کار نمیگه و بعدم این دو تا کشور مثل آتش و آب میگه که از چینم اومدن سراغشو از چیزو خلاصه دار اصلا دید اه، توی یه بیاخی شورشی خیلی بزرگی رو داری پرورش میدی اینجا و اینا مثل آتش رو تو بردسی حالا اینا میخواد جفت کنی من میشم چی چیزی بعد دنبالش میگه که برای اینکه محریم بزنه به این رضالتش میگه اگر من اینا رو به تو نمیگفتم در حق تو وفاداری نکردم و خیر تو رو نخواست و نامم به زشتی معروف میشه این وظیفه خودم دونستم که اینا رو به تو بکن نه خود دلش کار شد دردمن پر از قم شد از روزگاری که زند به گفت بر من تو را مهر خون به جنبید او گفت تو را رخ نمون در این نام رای آوریم سخونهاش بهتر به جای آوری. تو این رای گردت خرد را درست بگویم که درمانچه باید درست چهارون که کرسی و آمد به در کلخ بر سر و تنگ بسته کمر بهدار توران و را پیش خاند سکار سیاهوش فراوان براند دو گفت که یادگار پشنگ چه دارم روز از تو بگیتی بشنگ همه رازها بر تو باید گشاد به جلتی ببین که چا آید یاد از آن خواب بعد چون دلم شد غمی به مخزندر کمی. نرستم به جنگ سیاه نیامد میان نیا نیز از اونیز ان تخت فرمایه پدور کرد فردتار کرد مرا خود کرد سفرمان من یک زمان سر نتاق سر نتاق از من چنان نیکوی ها بیا بدون کشور و گنج خیش نکردیم یاد از غم و رنج خیش به خون پیوستگی ساختم دل از تین ایران بپرداختم نفیچیدم از گنج و فردم جوز. گرامی دویده سپردم بدون یعن گرامی دو دیده سپردم به دو، یعنی دختر عزیزم رو دادم بهش بعد. پس از نیکویی ها و هر گونه رنج، فدا کردن کشور و تاجوگن، گریدون که من بستگالم، نباش از قصند جهان آفرین ننیز از خدوقان روی زمین، به دستیزدندان ترس بشید. از شیف؟ کن در دلش بیمشن، شیفنی، اگر بچه ایزان خود دردمند، بلیند کند دامدت را گذن، اگر ما بشوریم بر بی گناه پسندت شنیم دابری تو با ما ندانم دزن کشف به در بزایی از از ازیدر از ازیدر فرستمش اگر گاف از این دومورد ببسل از دابری میبینید که افراسیاب هنوز باور نکرده یا <تصفح> روز استراحات کن منم فکرام بکنم تا هم تو بکنم بعد میام با حرف بزنیم بعد کسی بز میاد اول که تو برادر منی تو یادگار پشنگی تو تنها که سیاسی که با من قمگستار منی من, من میتونم رازان به تو بگم اینا و من اون خوابی که دیدم، اون خواب وحشتناک که دیدم، قیادتون هست یکی که از اون خواب فعلی ناراحت شدم به یه خورده عقلم خوند شد رضا دادم اینکه سیاهش و جنگ ایران رو ادامه ندادم اما، اما سیاوش که آمد اینجا میگه از آن خواب از آن خواب وقتون دلم شد قمی به مغز رو آورد دختی کمی اقلم یه ذره کن نبستم به جنگ سیاوش میان بعد میگه ولی من که به جنگ سیاوش کمر نبستم از دو هیچ بدی تا الان ندیدم هیچ زیانی ندیدم اولا که تخت پدرشو نظر کرد چون تخت پرمایه پدرود کرد خرد تار کرد و من رو پود کرد آدم که از تخت تخت پادشایش بگذره خب من تحت تحصیل قرار گرفتم پود یعنی تحصیل تار و پود تار ور... از این ور نخواه این ور لباس پود از این ور تار و پود زفرمان من یک زمان سر نتافت تو از من چنان نیکوی آبی ها هیچ ناخرمی هم نکرده سفردم به دو کشور رو گنج خیش کشورم رو دادم دخترم دادم همه اینا رو دادم و بعد از این همه نیکویی ها که با او کردم دخترم رو بشت دادم من شده من بکت بشت دادم شهر بشت دادم اگر حالا فت بکنم گلیدون که من فت سگالم بروی سگیتی برای لیکی گفته بود میگن آقا این اگه بعد بود چرا اینقدر بهش محبت کرد؟ اگه خوب بود چرا بهش بعد میکننی؟ سرزلوم میشه بر اوبر باانه ندارم به بعد بعد وقت میوا اینکه من هیچ باانه بعد ندارم که یعنی هیچ چیزی نیستش که من او رو باانه بگیرم و بگم که این بعد کرد ازی بعد رو گوش میکنه و باانه رو برای افراسیاب میساسی بهانه رو میسام بر او بعد بهانه ندارم به بعد گر از من به دو اندکی بدر زمان برگشایند بر من مهان درفشی شوم در میان جهان درفشانی علامت علمه میگه میگه منم اگر که حالا بدونت بهانه ای به او بد بکنم بین مردم معروف میشم به بد کردن زت تیز دندان چی میگه از شیر بالاتر که حیونی نیست این اگه بچه‌شو دید کسی بچه‌شو اذیت کرده دیگه هیچ حیبونی رو باقی نمیزه دیگه من این بچه ی ایران رو اذیت کنن باید منتظر عواقبشم باشن, باشن پیدر ها در میرن اگر بچه زانو خود دردمند ببیند کند دامدت رو گزند اگر ما بشوریم بر بیگناه بدون بحانه اینو اذیت کنیم خدا میپسنده اینو پسندت چون این داغرهورو ما باید که پس بنابراین بهترین راه اینه که من او رو به درگاه بخوام و بفرستم بگم آه سما تشریف ببریم و از این سوی پدر اگر گاه او یا گرنگشتری از این بوموبر بسلت داوریم اگه تخت بخواد، تاج بخواد، شورش بخواد بکنه وقتی رفت این مرافه اینجا تمام بشه. ولی که اصیبه که میدونید دروغ میگه اگه سیاهاش پاشت برسته به درگاه یا ما تو محبو تویون رفت رو بگن اتا آت ما همچنگرم توی تو نیست، بنابراین نوید بیار و بعد میگه که، حالای گرسیوز میگه بدو گفت گرسیوز ای شهریار بدو گفت گرسیوز شهریار مگیرین چون این کارتون مایه خواد از این درگر از توی ایگران شود و روزون ما کافت بیران شود هرمی گفت که بیگانشون فیش تو بدانیس راز کم و فیش تو چجویی دگر زودتو بیگانه چجویی دگر زودتو بیگانگی؟ بی کنی رهنمونی به دیوانگی بی کنی رهنمونی به دیوانگی بیگه و از که اومد همه رازت تو دونست تو, تو چرا اینکارو در پار میگیری بحیله که اومد همه چیزی تو چیز دونست بعد بره بیگه به کلی همه چیز ما تو دست چه بعد اگر که تو از اون بیگانگی بکنی این دیوانگیه برای اینکه اون همه جوزیات تارهای ما رو میدونه یکی دشمنی باشد اندوخته نمک را ما پرکند برس دوخته میگه رو چیزی سوخته نمک نباش کسی که سخته ما پرکندن یعنی پراکندن دیگه ما پرکند یعنی پراکندن بخواه گفت این داستان زد یکی رحمون آبی که از خانه آید برون ندانند در مانان را برند اگر بد نخواهی تو به این یوشتند نبینی که پروردگار پلنگ نبیند به پرورد جزدرد و جنگ خیلی اینجا میزنه میگه آبی که از خانه خانه یعنی اتاق آبی که از اتاق میاد بیرون جلوشو با صد و بند و اینا نمیشه تو اتاق پره باید از باید این میگه این مثل آب که از تو اتاق دوشت دشمن خانگی شده همه چیز چیزای ما رو دونسته بنابراین اینو باز قهر شد. و با ست با بستن با اینا درست نمیشه پرکن رو بشنو نمی بینی که کسی که پلنگ رو پرورش میده آخر سر چیزی جز در دورنش نداره فرور. که افراسی آبانسخان بازجوز همه گفت کردی و از آمد درست تک کرد تس... که درست کرده بود که داده بود چه؟ بیت... نه پشیمان شد از, از رای همین تیره دانست بازار پیش چنین داد پاسخ که من از سخن نفر نیچ بینم بلا را نبند بباشیم تا راز گردانسکه چگونه گشایت به این کارچه چه در بهتر درنگ است شتا به من تا بهتابت بر این آف که رای جهان دا و چی چو که شمع چرخ روان سوی قیس اگر سوی درگاه خانم باد به جویم سخن تا چه دارد به راز نگهبان اون مبطم بیگمان همین بنگرم تا چه گردد از زمان کزوکجی و کارجی آشکو رو شبت ناچار دلبی ناچار شود از آن پس نکوهش نیاوید که مو کوورت بس رد بدی نیست بسیار اینجا یک نیم بیته که ضرب المثل شده به هر کار بهتر درنگ از سیفا. این ضرب المثل اینه بعدم میگه که آره من چیز کردم و نمیدونم ولی باید صبر کنیم که حالا نمیشه که افضامش و خوبه که من بخامش بیاد اینجا من میتونم بفهمم که چی در دل داره و اگر بدی در دل داشته باشه تو خیاله راحت باشه من یه نفر برای اون بسم راست میگه حریفش بوده، راستیا به دیگه یه شود پوها آهن تو دریای آب اگر پشتو نام افراسی میگه من یکی پس ولی اگر بدیش آشکارا شد من اولا حریفش هستم بعدا دیگه کسی ما رو سرزنش نمیکنه، برای که مفاهات بدی جز بدی ولی کسی لازم میدونه که این نباید بیاد چونین گفت که سیبت کینه دو که ای شاه بینادر راست بود دیابوش بدان آلت و فر رو گفت بدان, ایزد... بدان ایزدی شاخ آن پیغ و گر گراید به درگاه تو پاسه ها شود بر تو تیر و خورشید و ما یاغوش نهانه از کشتی شاه همین داست منت کلاه کلا فریگی را هم ندانی تو باز که گویی شدست از جهان بینیاز سپاحت به دو باز گردد همه تو باشی رمید نیاری دمه. از باهی که شاهی ببیند تنود بدان بخش و آن رایان ماه روز نخواهد از آن پس به تو را برای, گاه او, برای گاه او را و برای گاه او را و ماهی تو و دیگر که از شهر آباد اوی چنان بوم فرخنده بنیاد اوی تو خانی که ای مرا بنده باش به به مهر من آگنده باش ندیده از کس جفت با پیر شیر نه آتش از بر و اگر بچه شیر شیز اگر بچه یه ها شیر اگر شیر به کسی در میان خرید به گوهر شود باز چون شد بزرد نه تر کرد میده که نه یواش اون یا بس اون هم اون نیسته فرنگیزم اون نیسته اصلا نه میشکستی شون شد شد و اگه اون با و دیگه تو رو نخوام به شاهی پاس. همین بازی که عینا در داستان ایرج سرور که سرمطورور میگن اگر ایرج میونه این ثپاه باشه کسی به ما به شاهی محلی نمیشه بنابراین تنها راه برای این اینکه ما بتونیم پادشای کنیم اینه که ایرج رو از میونه وقت عین همین بازی رو درسیب داره کسی سیاه باش و فلان و اینا بعد آدمی که اونجا پول داره و سپاه داره و لشکر داره و بسات داره تو میخواد که بیا اینجا بنده من بشه و بعدا تکر که اون میا... میکنه کسی پیلو با شیر جوه ندیده میدونید که شیر هیچ وقت فیل حمله نمی کنه با اینکه پیل, پیل علبکاره ولی بسیار زورمنده بسیار بسیار زورمنده و سرخ و سلاح هر دوشون یعنی شیر پمکنه که فیلو زخمی و اینا بکنه و ناراحتش کنه و حتی بعد بمیره هم ولی اونم شیر رو نمیذاره راحت رد یعنی یه دون پاشو بذاره روی کمره. شیر کمرش میشه این از که صلاحشون اینه که گفت که عباید زاکوانی میگه میگه به رووا گفتن به سکی به رووا گفتن که تو چند تا را در رفتن از دست سگ تو را او خیلی شاید سخت. اما بهتری نشینه که نه من اون ببینم نه اون رو حالا اینا میگه که شیر رو با پیل، با هم نمیدینم آب و آتش هم با هم نمیدینم و بچه شیر رو اگه لای حریر رو لای پنبه بپیشنه اینش بزرگ شد همون درندگیست که هست با اون نرمی حریر رو اینا چیز نمیشه یعنی درندگیش از دست نمیده پیرانم نیست از بخت بخت اینجا جلوه این کارو پی بیشه. پس افراقی آونداران بسته شد قمی گشت و اندیشه پی اگر از باد خیره نجستی زجای مگر یا چهره و پر و پای همین از شتابش دهامت ده رنگ که پیروز باشد خداوند سنگ ستوده نباشد سر باد سر باد سا. با سار بر این داستان بر این داستان یکی حوش یاد سبوکسار مردم نوالا بود وگرد چه جاوی جاوی سر, سر, جاوی سر بالا بود وگرد چه گوی بود این باز داستان یعنی مثال این باز مسئله سبوکسار مردم نوالا بود یه مردم سبوکسار که آنی بدون تحنی بدون تحمل یک میکنن اینا مردم دروستی نمیشن هرچقدرم خوشگل باشه و بلند بالا باشه و فهلبان باشه کارش خراب باشه. در پیچان و لب پرسخان، پرست که دل از روزگار کهان بر شاه رفتی، زمان تا زمان، بد کردی و وز گمان زهر بونه رنگ اندر آمیختی، دل شاه توران برانگیختی. انگیختی چونین تابر اومد، بر این روزگار، پر از دردوکین شد دل شخیان سبخبت، چنین دید، یک دوز رای، که پرده وقت مان از دیگان جای سکرسی، وز این داستان برگشاد، زکار سیاه بشت هم تو را گفت از این درد بباید شدن برای او فراوان نباید که بپرسی یو گویی کزان جشنگاه نخواهی همی کرد کسرانگاه به هستی همانا نجام بیده یکی با فریدی سخیز ریده رای نیاز است ما را به دیدار تو بدان تو کنه دیدار تو بر این توه ما نید هست به جام زبردت میوشی هست گرازی، یک چند باشیم، شاد چون آید از آن شهر آبادیات که شادی خرام پیو با من خراش و ترامیم بسیار بیگه پیغم این که کردیده داریم درست محانه سیگستم تحصیبات کارو طوری میده که بعد بتونه کاملا سیاه خوش متهم و گناهکار جد و قبل از اینکه بکتا نمبوض نرسیم بیگه اینجا باید این نکتر رو بگم که خیلی مهمه گفتم کیلی دمنه رو برای گفتم کیلی اصلا قدیم ترین کتاب علوم سیاسی پولیتیکال ساینس که در دنیا نبیش سه نبیش. اصلا کتاب مملکت داریه یعنی در از زبان هیوانات در لباس قصده ای که هیگونا با هم میگن اصول نگاهداری مملکت رو در اون باب پشیوگاو میگه خب حالا داستان کسانی رو بگو. که اینا با هم دوستی و سمیمیت دارن و در نتیجه سخنچینی آدم بدخواه میونه اینا به هم میخوره و موجب خونریزی و فتنه میشه او جواب میده که بهتریش داستان شیلو را داستان شیروگاه ببارت از اینه که خلاسه شو میکنم که شیری بوده است و بعد یه بازرگانی میاد و میرفته مسافرت و در هند تمام این عرابه ها و اینا رو با گاه میکشن این دو فاکستان اینا همه این با گاو. دو تا گاو هم داشته یکی شنزبه و یکی بندبه و میرن و وسط را شنزبه توی یه جای بلژن اینا میمونه و نمیتونه بیاد میشه موسیقی بازرگان یه مردی رو میذره اونجا میگه که تو باش از این موازوت کن بعدم وقتی خوب شد در دیگه یارو هم دو روز میمونه و حسنه سر می رو میره میره می می می به بازرگان میگه سقط گاوه اونجا بوده و حالش بتر میشه و بلند میشه و ویخته نیچه و ویخته را رو و, را رو و این بره و اون بره و حالش خیلی جا میاد تو قشنگ رو یه پریادی میکشه شیری اون اطراف بوده که خ خب بعد این صدا رو میشنه به هیچوقت هم گاف نشونده خیلی میترسی و فکر میکنه که این چیه، ما رو کیه در فارسی میگن ار میکشه گاف صدای می گاف میگن ار میکشه و در عربی به صدای گاف میگن خوار مثل خار می نمیسن ولی خوار میکنه و ارهاد از ترسی تیگه این برای منی خیلی راه کم می رفتی که یه وقت برمکاره به نیز هیبونه حجیب و حجیبی که نجیب دو تی شاغال بودن اونجا یکی کلیله یکی دمنه که کلیله هیبون خوب پرسنیتی بوده دمنه عوضش حریس بوده و جا افتاله و دنبال مقام و با هم رفیق بودنیم میاد دمنه به کلیله میگه که پادشاری می هیچ تکون نمیخوره از جاشو مدت چیز که اصلا نمیگرده او اینا و که کسی نیستی که بتونی بری در دست پادشاهانو چیز کنی اونا میگن آ چرا چرا نمیشه درسته که نزدیکان پادشاه یه شاغال ناطیزی مثل منن ولی هر کس کوچیکی هر چیزی کوچکی بالاخره یه فایده ای داره یه چوب خوش که اینقدی افتاده تو راه هم ممکنه به درد بخوره گوششون باش میخورن یا رو خلال میکنه بنابراین منم ممکنه فایده ای داشته باشم خلاص میگن و میگن و میگن بالاخره میگه من میرم پیش شیر و این مسئله رو حل میکنم من میدونم اون صدا میترسه و من میرم این کارو می رو بسید میرم و خود رو به شیر میرسونه و نزدیک میکنه و بعدم میگه که شما نراحتین رو من میدونم و اگر اجازه فرمایین من میرم ورش نمیارم. میارم حالا خیلی طول و داره داده که شیر میگه برو بعد که رفت میگه که حالا من چه که کردم این حیون حیوانش در تو دستگاه من بودن من بهشون اهتمام نکردم واسشون بد بوده حالا نکنه بره اینو با اون بسازه اون رو هر دقیقه به سر من درمان در بیاره من بعد کاری کردم دقت نکردم چه کردم خیلی حیف میزه ولی در میره و شیر و گاو و اندر میره و میره اونجا و میبینه که نه این خیلی حیوان خطرناکی به نظر نمیاد و بعد میگه چرا خدمت پادشا نمیادی و چیز و ایناو خورسه میمیره میره گاو چی تا سلامتی می‌کنه میگه می‌خوام اینجا بمونو با من زندگی کنم راحت باش میگه خیلی خوب، و بعد از یه مدتی شیر می‌مینه که گاو خیلی گاو خوبیه آدم خوبی که نمیشه گفت خیلی راست درسته، با شرف خوبه فلان اینا روز به این محبت زیادتر میتونه تا میشه وزیره وقتی وزیر شیر میشه دمنه هست. که من رفتم خاکو دست خودم به سر خودم بکنه. این آوردم حالا تمام تعجر شیر به اینه و من از مقام خودم خودم بچه میره و یه کلکی میزنه که اون کلک درست همینه که گردی و. یه روزی تنها میره پیش شیر همین میگه که میگه من وظیف هم میدونم که به شما بگم اگر که نمی گفتفتم فکر که من نامم به زشتی میره که صلاح شما رو میگم قربان من صلاح اندیشی باید بکنم دکتر شما هستم و اگر این کار نکنم با اینکه ممکنه خوشتون نیاد ولی خب من وظیفه خودم میدونم که حقیقت بگم خب بگو میگه ولی گاب با فرادر اشکار خلوت کرده و ترتیبات داده و سپاه داره درست میکنه و چه میکنه و چه میکنه و فدای جان اینجور این من چیزی از این ندیدم دور جز ساستی جزء انخونیه جزء این اصلا چیزی نداره میگه نه من خبر دارم شما توجه ندیدید من خبر دارم حالا من میرم میارمش اگر دیدید که شاخاشو اینجوری میکنه و اونتا میشه تکون میده و اونم نگه هم حاضره به مرافع هست بدون این که آماده شد رو دارید بعد میرید دا. خیلی غمدین و ناراحت و اینا داب میگید که دا. چیه؟ میگه که این شیه چیه دیده چیه تونم به تو خشت گرفته، ناراحتی، اگه ناراحتی من برم کار درست کنم، چیز نکنم او خوب بوده دیگه میگه نه من از خواهم نراحت نیستم که من از تو نراحتم برای اینکه شیر گفته که این این شنزبه خیلی روز زیاد شده و داره توتره میکنه و چه میکنه و من باید روی کم کنم و با گوشت این یه مهمونی خوبی از چیزا میکنه، از حیبونها میکنه ها کاری نکردم، چیزی نکردم، فلان نکردم میکنه خب من میدونم، ولی این اصلا چیزه بدطبیعته و سو زن چه داره و چه داره و no. ایناو میخونه انقدر که یقین میکنه این گاف که اونجو بره مرد هم شیخم میگه خب من چه میکنم، منم باید ناچارم یکی این شد از خودم دفاع بکنم، میکنه که برم اونجا و بگم که بفرمایید قورمان بنده رو بخورین. هم تا اونجا که باید باید تلاش. اینی که با همو حالت میاد بعدم میگه میگه که اگه رفیلی لیشی، دم به زمین میزنه و میقره و این طرف اون طرف نگاه میکنه نا بدون که آماده شده برای اینکه تو رو. خلاص دو رو به این حال میره جلو هم و نتیجه معلوم. بعدش میفهمن که همه تفسیری این بوده و محاکمه تشکیل میدن ثابت میکنند که دم نفت دنگیزی کرده کار ندارم ندارن به درست اون ترتیباتی که این از اون میره میگه که اینجوری از این یکی میره به اون یکی میگه و نمیگذاره که بین اینا حرف فیکس زده بشه یعنی نه مجال حرفا برای این میذاره نه مجال برای اون میذاره فقط به اون حرفای خودش میگه به اون یکی هم حرفای خودش میگه و درست در هم دیگه و این تحریک می‌کنه ضد اون اونم تحریک می‌کنه بر ضد اون اینه این کارو آقای گرسی اولی که میاد پیغام میفرسه از مثلا خمی فرساخی که عزیز من سیاه شونم غربونه درم مواد تو زحمت بکشین مواد استقبال من بیا من دیگه با تو چیز ندارم که تو،, تو رو به جان و سر افراسی ها پسن تو رو به فلان نه یای استقبال من من استقبال میخوام چکنم خلاصه بطبط تو نمیذاردی بیا بعدم هم جلوته میگه، تو جلومان بلند نشه یا، تو پادشاهی، تو بلند. از این حبا میخواد سیاوش بشن، از اون سندلی پردازش میگه، نه، من باید همون زمین بشنم، من محکر تو هم، نزم فلان بعد هم میگه حفاظیاب اینجوریه او به تو خشم گرفته بود، چنینکه ای نه، نه، نه، میزنه بعد باید باید گرده میگه حفاظیاب نارا خمس. چیه؟ میگه، ولی بله من را حتی اونجا محل سکت من نسکت من استقبالی نه بپرسیم، از لحشگر بپرسیم دو قدم استقبال من نایمد برادر شاو عموی زنی شنه من فلان بعدم در نهایت خدفت و خاری من روز همین نشون جلو چیزا و فلان و خلاصه از آیا درست میکنه تمیز افراس بعد بعدم به سیاهاش میگه که چیزه با افراسی ها نامه داده که پایش بیا اینجا شکاری بکنیم جا ها میبزن چیزی بکنیم میگه میخواد تو رو تلکت بکنیم و صلاح اینه که نام اینه که فرنگیز آبستن و ناراحت بودی به معیزه من الان نمیتینام بگنیم و نریم را من نمیگه اینجوری کنیم بعد افراسی خوشبان شد باز به سیاهش میگه که اگر آمدی نمون زیره به توش شو کن باش. خلاصه این دوتا که میرسن به هم به صورت دوتا جنگ بعد میگشت یاوش میگه من املا به استقبال شما قباشو میتنم کنان که به استقبال زیره میکنن زیره ما قبر و به هر حال میگه میگه ایر نشد میبرم دیگه جوزیاتو هم برای که اینجا هستی ولی شباهت عجیب و غریبه این قصه شیروگاخ در باب اولی اول که لودمنه و این روشی که گرسیوز در این داستان به کار میبره چون اون داستانی رو گم فوق العاده قدیمیه یعنی سه هزار سال لا از عمرش میذره. بنابراین احتمال این هست که وقتی که این داستان و نویسندگان اصلیش چون پردکسی که نویسنده داستان نیست، نویسندگان اصلی این داستان وقتی این داستان رو ممکنه که کلی نه رو خونده باشن و از این روش، این نوع چینی اطلاع داشته بشه ممکن ماست نداشته من نمیدونم تصادفاً ممکنه اینجوری شده باشه ولی شباهت خیلی زیاده بین روش دمنه در داستان شیر و برای به همزدن بین شیر و و روش کرسیوز در فتن بین افراد و, و این کار کرسیوز یعنی این حسد اون موجب میشه که تمام خاک توران به باید بره یعنی فقط به کشش شدن سیاهش خضیه خط نمیشه تمام خاک توران به باد میره و آخرش که خصو افراسی ها رو میگیره و کرسی وزم میگیره و اردوشون رو میکشت خب، بسید که الان نمیرسید. که دون این این چیز، دیگه تا آخر سر چیز رسیدیم دیگه 1934 روز سه میایید می اینو هم سعی می حالات حالا جوزیات چطور دو افتم از وقتی ولی سعی می دیگه توضیح کم بدن که بلکه نمی رسیم همه بخونیم ولی جاهای مهمشو بخونیم